بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده به اندازه محرابان بارح حامیم و قسم به این کتاب واضح که آن را در شب پربرکت نازل کردید حقاک بیندهنده بوده در آن هر کار با حکمت خاص واضح ساخته می شود به حکم از حضور ما بیگمان این ما بودیم که این کتاب را نازل کردیم رحمتی از جانب پروردگارت بیگمان او شنوا و داناست پروردگار آسمان و زمین و هر آنچه میان آنهاست اگر باور دارید جز وی هیچ معبودی نیست زنده میگرداند و میمیراند پروردگار شما و پروردگار نیاکان شما در نسلهای پیشین با این هم ایشان در شکن و با بازی مشغول می نگاه کن روزی که آسمان دود واضح پدید می آورد که همه مردم را فرا می گیرد این عذابی دردناکیست می گویند پروازگارا عذاب را از ما بزدائی بگمان مؤمن می باشی از کجا ایشان تند فضیر می شوند در حالی که و ایشان به گونه آشکارا و پیانبر آمد سپس از او روی تافتن و گفتند تعلیم داده شده و دیوان است. ما در یک دوره محدود عذاب را از شما دفع می کنیم ولی شما به کفر خیش باز می گردید روزی که با همان گرفتار کردن شدید شما را گرفتار کنیم واقعا ما انتقام گیرنده ایم. پیش از ایشان نیز قوم فرعون را آزمودیم و به ایشان پیانبر گرامی قدر آمده بود او می گفت بندگان خداوند را به من تسلیم کنید بیگمان با شما پیانبر امانت داری هستم و در برابر خدا سرکشی نکنید که من با شما حجت واضح آورده من از این تحدید شما که مرا را سنسار می کنید پروردگار خود و پروردگار شما پناه آوردم اگر به من ایمان نمی آورید، پس در حد عقل از من کناره گیرید. در این حال به پروادگار خود دعا کرد که اینها یقیناً قوم مجرمند. با وی گفتیم که بندگانم را شبانگاه بیرون کن. شما واقعاً مورد تعقیب قرار می گیرید. و دریا را به گونه آرام به حال آن بگذار. بگمان ایشان لشکر آن اغمک شدنی. ای بسوز باغ ها و چشم ها که گذشتند و نیز کشدار ها و رهاشگاه های با شکوه و راحت بخش و نعمت هایی که در آن با خوشالی بسر میبردند این چنین شد این ها را به مردم دیگر به میراث دادیم آسمان و زمین بر ایشان گیریه نکرد و نه هم به ایشان مهلتی داده شد بیگمان بنی اسرائیل را از عذاب زلطبار نجات دادیم از فرعون حقا که او متکبر و از اصرافکاران بود و ما ایشان را دانسته بر جهانیان برگزیدیم و برای ایشان از نشانه ارزانی کردیم که در آن آزمایش آشکار بود بیگمان ایشان یعنی قریش با اصرار می نیست این که زندگی جز مرگ نخستین ما اما باری دیگر بر نمی شد پس پدران ما را زندگر دانید و بیاورید اگر راست می که واقعا بعد از مرگ دوباره زنده می شن. آیا ایشان بهتر و نیرومنترند یا قوم تبق ایشان را و نیز کسانی را که پیش از آنها بودند هلاک ساختید ایشان واقعا مجرم بودند آسمرها زمین و آنچه را در میان آنهاست با بازی نیافریدید آنها را جز به حق نیافریدی، مگر بیشتر ایشان نمی داند. بیگمان روز فیصله حساب اعمال به گونه دست جمعی و عدگاه همه ایشان است. روزی که هیچ دوست دوست خود را از چیز بینیا ساخته نمی تواند و نه هم ایشان یاری داده می مگر کسی که خدا بر او رحم کند بیگمان او صاحب قدرت منی و بخشاینده است بگمان درخت اخت زکوم خوراک گنهکار است مانند فلز گداخته که در شکم ها می جوشد همانند جوش آب جوشان او را بیگیر درمیان دوزخ بکشاید سپس بر سر او از آب جوشان پریزید بشك می پنداشتی که به تو صاحب قدرت مونی و محترمی و این است همان چیزی که در آن شک داشتی. تاکه پرهیزگاران در جای امنی قرار دارند در میان باغها و چشمسارها از پاچه های نازک و ذخیم حمی ابریشمین می‌پوشند روبروی هم نشینند یعنی به یک دیگر انس و الفت می‌ورزد و به این ترتیب ایشان را با فوران بزرگ چشم پیوست میگردانیم در آنجا حرم وی را با آرامش خاطر فرا خواند. در آنجا موضع مرگ را نمیچشد جز همان مرگ نخستین را و ایشان را از عذاب دوزخ نگه داشته است و فضل از جانب پروردگارد این است تومان پیروزی بزرگ حقا که آن یعنی قرآن مجید را به زبان تو آسان ساخته ایم تا باشد که ایشان پند بگیرد پس منتظر باش آنها نیز منتظرند